شنبه دو بهمن با آرمین و اشکان و بهلود بچه های میزبان نیماییم نشستیم اینجا سومین روز ست تمام شد میشه یکی از مستقل ترین جریان هنری تهران هن که فکر می حدود مثلا 15 ماه که از آخرین فستیوالی که همشون ما هم بودن گذشته میبینم که قشای مخاطبشون خیلی بیشتر شدن امروز خیلی بر من جالب بود که اودینس بیشتری اومده بودن از هفته یک پیش توی اون مسابقه پارسال توی ست گفتی که ایدال یه جوری که مثلا همین در واقع یعنی سالونه حالا تاریخی شه با نورپردازی کم بدون ویژوال که صرفا فضایی باشه برای شنیدن. خب منم هنوزم فردا نکرده از اون چون همونه فکر کنم نور همون موقع نداشت. حالا یه نور خیلی کمی داشتم. ولی نه آره من برام کلان یعنی ایده‌آلم اینه که این شکلی پرزنت بشه موزیک اما ویژوال اصلا هیچ وقت نمیخوام باشه. فیدبک هم گرفتی از مخاطبات که آه. که این که این این مدل تجربه رو دوست داشته آره فیدبک هم داشته به خاطر اینکه موزیک به نظرم شکلش هم حتی این شکل این هست خودش. بنی <تصال> یعنی، استایلی هست که احتیاجی به ویژوال نداشته باشه یا اگر هم داره یه چیزیه که من هنوز نمیدونم <تصال> خب یا <مثلا> سمتش نرفتم <تصال> <تصال> که بخوام بفهمم چیه ولی آره فیدبک ها همینجوری بوده که آره خیلی بهتره تو این فضا موزیک بیای یه جای تاریکی و فقط مواجه بشی با صدا <تصال> <تصال> چون پرفورمنسمون این شکلیه موزیکم پرفورمنسی نیست که خیلی اکت داشته باشه خیلی بیتی در کار نیست خیلی مثلا سازی در کار نیست و فقط یک فضاییه که مخاطب بشینه و بشنبه. فقط. خب بعد تو از این دو طرفه بوده یعنی از مخاطبه هم حالا با توجه به که آره، آره. نوع پرفورمنس خیلی مثلا ساکته از اونو هم مثلا چیزی میگیری وایبی میگیری که مثلا همون لحظه آره، من حتی به نظرم من این اتفاق افتاده برم که که آدم هم همینو میخواستن یعنی در واقع ادمایی که حالا با همه که حرف نزدن ولی حالا با دوستای نزدیکی آدمایی که می‌دونم مخاطب جدی موزیک درون یا امبینت دارن تو خودشون که مثلا اونا هم خیلی علاقه ای به دیدن ویژوال همزمان با شنیدن موزیک من نداشتن هیچ وقت یعنی من خودم هم هیچ وقت پرزنتش اون شکلی نکردم و باسه همین به نظر یه چیز دو طرفه یعنی اونا هم فکر می‌کنم که اون حسام اینه که دو تعجب فیدبک گرفتم اونا هم را اینو این شکلی و اینکه به نظرم برای چون من وقتی خونه مثلا موزیک امبیئنت یا درون میذاری ترجیحتینه که یه فضایی باشه که بری توش اصلا کاملا تا شده بخوای یه موزیک جدی بس از حالا تو الکترونیک و یه جوری حس کنی که تو قالب اونچونگا نمیونجه خب ولی از این طرف پس بیخیاله شدیم نه چون که اصلا از قبل که من ایدی درست میکردم از خیلی وقت پیش وقتی اونچونگا شروع شد یعنی اصلا این اسم رو انتخاب کردم امه. پروژه شروع شد. و نه ایشوخه نتورافتادم که مثلا این موسیقی بخوام بسازم در این قالب. قالبی نیست این اصلا ام. که بخواد نونجه توش چیزی. خب تو امن الکترونیک مثلا دوست داشی چیزی غیر از ام... حالا این امبینس سنگینه. الان من بگم شاید بعدا آره ولی الان یه ام. چیزیه که این هم کلن درون و امبینت و کلاسیک. از اون ور از اون ور مثلا لاک متال این داستانم. خب آره من راجب همین بک متال توجه به اون سلیقه‌ای که نسبی پیدا کردیم با توجه مخصوصاً به آخرین پادکستی که گذاشتی برای رادیو شار که میگسهپ بلک متال بود میخوام ببینم که المانای هستش از بلک متال که تو موزیکت استفاده کنی یا این نقطه اشتراکی وجود داره حالا نه فن موزیک بلک متال اتمسفریک یا رن که خیلی فضا چیز داره کلی فکر می‌کنی حالا مثلا اگه ب... حس می کن واسه یه ذره متالواز هستی این المانا رو میتونی بیارید توی این موزیک ها ببین تا حدودی که هست تا یه تایه حدی هست و مثلا حالا خود درون این درونایی که از بلک متال اومدن خب درونایی ان که خیلی به اون تکسچر دیستور شده یه... کشیده شده استرتچ شده خیلی علاقه دارن و ش... اون شکلیه هن... من می موزیک درست می و به نظرم توی موزیک من این هست تا یه توی بعضی از ترک هم. درست ولی خیلی اتفاقا به چیزی که دارم فکر میکنم این هست که یه, یه کمی نزدیکتر بشم به اون فضای اصلا من توی همین امبیئنت و درون باشم توی قالب ولی المان‌های خیلی مشخصتری از می‌تونه کلا یه شباهتی وجود داره چون من بچه‌ی متال هم که می‌شناسم گاردشون کلا نسبت به موزیک الکترونیک و امبیئنت کمتر نسبت به بقیه اینو یه،, یه چیزی اون وسط آره یه چیزی بس. این وسط کانکشنشون و واقعا تا خیلی هم میشه تاریخی هم بررسیش کرد و رسید بهش که از چه منم همون موقعش هم مثلا موج دوفومه همین نروژیای خیلی زفت و سخت مثلا خب بارزام خیلی نزدیکه به این یعنی بارزام خیلی باعث شده که بس شده به این بر همون آلبوم فیلاسفم هم که خیلی معروفه و اینکه آره از اون به بعد یه سری قشنگ کاملا این اتفاقا چون افتاده تو خود بلک متال اون اونا هم دقیقاً گاردشون چون ادمو که خیلی گارد دارن گاردشون نسبت به امبیئنت و درون آره خب خیلی کم یه سوال دیگه هم دارم راجع به ترک اگه طرف ازش یا تُربیولنس تُربیولنس در ترک تُربیولنس چون من سه تا بودن مشه یکیش ترک مورد علاقه منه از و من باش خیلی جالب تا خیلی اوکی بوده اینا اون به نظرم یه اگه درست بگیم، یه لحن یا یه خیلی منحصر به فرده و خیلی با بقیه کاره که تو ایران شدیدن فرق داشته میخوام این حسایر این امزایر رو چجوری بهش رسید یعنی چون تو مصاحبه یه هم که با صد داشتیم دفعه فقط میگفت بچه ایران یه چیزی تو موزیکشون هستش که مجزاشون میکنه از بقیه هم، یه تو دنیا یا توی اروپا حالا مشخصا بخوام اینم اونو چجوری جوری بهش ببین یه ذره که چیزه واقعا یه ذره بنظرم این ماجرا جغرافیا که کاملا هست توی موزیک یعنی مم. یعنی چیزی که من خودم مثلا نمیتونم بگم که حالا ما که تو ایرانیم فرق داره مثلا با موزیک اونی که حالا تو آلمانه یا تو اینگلیسه ولی یه چیزی که مثلا آدمای مثلا این لیبلی که من آلبومم بهش دادم اصلا صاحب اون لیبله اون بهم میگفت که شما تو موزیکتون یه چیزی هست که معلوم از یه جغرافیای دیگه میاد خودتون شد اصلا متوجهش نشین این وایوی که لایو تم ایلوژن داده که اینجا هیچ کی دلشن میخواد بره اصلا سالون میرون همه حسادت برخلاف دو هفته پیش که همه سری میخواستن جمع جور کنن <تصفيق> بهرنگ و شایین و پارسال یعنی فیوریت من از توی ست اه، اه، یک واقعا اجرای بهرنگ و شایین بود ولی اجرایی که امشب ازتون دیدم به همراه ویژوال نایلاد نیمه اولش یکی هم هست کنم آره، هنوز اون تجربه مشترک بهرنگ و شایینه ولی نیمه دومش آلبوم بود قشنگ یعنی نیمه دومش اصلا ترکای کاملی بود که قشنگ ساختار خیلی فوق‌العاده‌اش معلوم بود که کلی وقت گذاشتید براش تا الان اتفاقی که می‌افتاد این بود که منو به رنگ لایو لایو می‌بوسه یعنی بر حسب ددلاین لایوا ما اصلا شروع می‌کردیم موزیک کار کردن واسه همین همونجوری که می‌گی دوره‌ای از زمان مثلا پاز می‌شده پروژه ولی الان دیگه قراری نیست اونجوری بشه یعنی الان دیگه قراری نیست که دو سالی هستش که تمپریچرن اکتیویتی داره و اکتیویتی هست داریم خودمون متریال مختلف جمع می کنیم پروسه رو جلو آلبوم بشه و حالا این چیزی هم که الان شنیدی از وایف میشه گفت یه بخشی از آلبومه یه بخشش نیست راجب اون سوالی هم که کردی که گفتی که بخش اول اجرا انگار که شایین و بهره این بودم و بخش دوم مثلا یه ساختار متفاوتی داشت کلن تو تیمپیلوژن از اونجایی که به رنگ تو پروژه سولو خودش یه کارکتری دیگه ای داره و من تو پروژه سولو خودم کاراکتر دیگه ای دارم یعنی خب پروژه سولو هامونو تو هر جفتشو میشناسه کاملا متفاوته هست. هم دیگه و واسه همین اصلا ما خیلی خوب شد با هم کار کردیم چون که اینجا اصلا یه جایی که ما میتونیم اونو رو بذاریم کنار کلا یعنی من اصلا هر کاری که توی پروژه تق میکنم و به رنگ کاراکتر تو پروژه بسکالر می رو کلا فراموش کنیم و اصلا یه سایدای دیگه ای از خودمون رو تجربه کنیم اکسپریمنت کنیم که تو الان اصلا بهش توجه نکردیم نه یعنی مثلا تو تو موزیک من شاید خیلی ریتم نشنویی تمپلیژن خوب مثلا کلان داری ریت میشنویی میدونی یعنی اتفاقا چون متفاوته درانش من میتونم یه اپروش دیگه ای داشته باشم قشنگ یه تیکه دیگه ای از خودم نشون بدم به رنگم کاملا همینجور آره این که مثلا میگن یک به علاوه یک میشه سه دقیقاً یه چیز اضافه ای هست که نه به نه شاهین پارسال که با هم صحبت می گفت که ست قراره یکم باسر بشه مثلا یه ذره خب الان شاید یه جوری بیشتر با معنی یه فستیوال حالا Ambient یا Drone Based میشترستن با توجه به آرتیست که دوش بودن ولی چقدر بیت اضافه خواهد شد این که ست بازتر قرار بشه که شد ما فراخان اعلام کردیم و یه تعدادی هم شرکت کردن تو فراخان اتفاقی که افتاد این بود که خب مثلا ترخون به ما اضافه شد و ناینتی انتایوپی هم که تاوستون اجرا داشتن با خود اونا هم خوب کسایی بودن که حالا درست ما میشناختیم ولی توی فراخان ما شرکت کرده بودن و خب انتخاب کردیم دو نفر رو که امسال عد بشن ای که وجود داره که داری میگی Ambientron دیده میشه بیشتر ماجره اینه که کارایی هم که برای ما بیشتر همین سمت و سرو داشته خب ولی خب ما نمیخویم خودمون رو تکرار کنیم این یه مسئله اصلا مسئله دوم هم این که من داشتم اجرای مسابقه عطارام میشیدم اون شب یه حرف خیلی درستی زد ست درسته که داره فراخوام میده ولی معنیش این نیستش که هر کسی که کار بفرسته میتونه بیاد تو ست اجرا کنه یعنی مطمئنا یه فیلتری وجود داره علاوهز کوالتی یا حتی سلیقه یعنی اصلا ما فنهام نمی کنیم که ما یه ای داریم و بر حسب اون سلیقه میدونی کلا همه فستیوال های دنیا همه ایونت های دنیا اپروش یه اپروچی دارن می دونی یه زیبایی شناسی رو دارن دنبال میکنن که ما اون زیبایی شناسیه رو تو خودمون که داریمش و میدونی تو کارایی که برامون میاد داریم دنبالش میگردیم خیلی جالب راجب اجرای امشبتون من اگه اشتباه نکنم سه سال یا 4 سال حدش شاد بگذره اواین اجروسو فکر کنم اواین اجرو تم پیریژن منظورمه اونو بودم اون اجرا یادم خیلی سافتر بود خیلی امبینتر بود و اینا حتی به نسبت این اجروت فونالایزر رنگم حتی آبی بود اینجا خیلی قرمز و اینا حالا چی شد اصلا پس فکر کنم به طور کل خیلی هاردکورتر بود نویزای دیستورتر خیلی میشنیدیم خیلی زرد زربتر و مشخصا تری اول چی شد بین اجروسی می‌بینم این یه بخشیش که تحت تاثیر به حال تأثیراییه که منو به راین داریم من موزیک‌های مختلف می‌گیرم. خب واقعاً اینکه بگم مثلا ما خواستیم این اتفاق بیفته نه نه من همین می‌خواستم بگم که یعنی خود موزیکه رفتیم سمتی یعنی خودش ما رو برد یعنی برای کار بچه که ویژوال میسازی اصلا تمایی که خودکار میکنید چیه؟ ببین اون متریالی که من استفاده میکنم اونو من هر چیزی که دوست دارم واقع استفاده میکنم یعنی اون چیزایی که میبینم خب من یه مجموعه از اونا دارم بعد موزیک بچه هایی که گوش میدم یه چیزایی که فکر میکنم که دوست دارم با این موزیک اون دیده بشه اونا رو میرم پیدا میکنم جمع میکنم اینا همش تا اینجا شخصیه، ولی حالا اون اتفاقی که توی لایف میافته، اینه که من یه سری چیزا رو یعنی سعی می فلوش با فلو موزیک پیش بره حالا مشخصا اجرایی که با همین تپ داشتم خوبیش این بوده که مثلا برخلاف دایایی دیگه که من موزیک و مثلا یه موزیکو رو داشتم و بعد حالا اومدم مثلا براش ویژوال طراحه کردم این و سعه داشتیم که خودم هم خیلی لذت می بردم و حال میکردم که با هم می رفتیم جلو یعنی توی پروس که بچه ها تمرین میکردن و موزیکشون داشتن می ساختن منم هم همیشه بیشتر میکرد که باشم و میگم توی این فلو قرار بگیرم <تصفيق> می فکر هم جواب سااعت زمین یعنی اینکهترریال ها اونا کاملا انتخاب شخصی اون اتفاقی که طولیت حالا یه سری حالا با میم تعمینداد مثلا تکنیکی اینکه حالا مثلا چیزایی رو وصلکن به مثلا یه علمایی که بچه ها خودشون یعنی بزن بزن, بزن به عه لایف دیگه بزن به باه موز سوال سالال که توی از خیلی از آرتیستتون چند وقت پرسییم ولیشون جوابات تکر نیست به نظر چه داره. اه. لیبل خوبی کارهای شما رو منتشر میکنن مثل مجله ها، پلاغ ریویو میکنن اون سایده الان برایش تق یا انتظامی ها رو با امان خودت با امان یا الان برات مهمه یا همین همین مخاطب حضوری که اینجا میان و کارت رو میبینن و با تحرف میزنن بین این دو تا وایب من وایب دوم رو می میدم اتفاقی که توی مجله ها میفته یا توی لیبل میافته، به نظرم یه بخشش خیلی دلگرم کننده است به خاطر اینکه هیچ لیبلی نمیاد یه آرتیسی رو که این لیبل یه کاری که حالا 50 درصدش شاد بیشتر بیزنسه و اون آدمی هیچ وقت نمیاد که یه موزیک آرتیسی آرتિસ્تی رو که شاید به اون استاندارد نرسیده بیاره بذاره تو لیبلش و خب مثلا وقتی تو لیبلی ریلیز می کنم مثلا هایبرنیت که خب خیلی از آرتیستی که مثلا قبلش گوش میدادن مثلا اوه این چا خفانه اون تو بوده حالا خداوام رفتم اون تو خب این خیلی چیز خوبیه برام ولی راجب اینکه خب این, این سایت مثبت این وایب ساید منفی این وایبه بیشتر بر میگرده به ژورنا ها و به همون ریویو ها خب مهم. من شخصا اعتقام اینه که خیلی از ریویو ها خیلی از این توجه هایی که داره روزی که ما میشه به خاطر تگ ایرانه به خاطر ما نیست. یعنی اگه من هم این تق بودم و تو برلین زندگی میکردم شاید الان میدونید دو تا ریویو هم رو انجام هم نوشته چته جالبه اشاره خیلی مهم. داره برمون توجه میخره به خاطر اینکه خب یه جایی که ا نمیدونم چرا من اینجوری فکر نمیکنم ولی اونا مثلا احساس میکنن که اوچ اتفاق عجیبی داره میفته توی ایران خب از نگاه اگزوتیسیه دقیقا همه داره ولی چیزی نیستش ده ده. که من ازش لذت ببرم واقعا من آه. تا الان بگم مثلا از این همه ریویو که جواب نوشتن مثلا جد ریویوهای مثلا جی نمیخوام الان میوام ریویوهای فلوکس رو مثلا میخونم ریویوهای مثلا اون علیرضا باستانی رو میخونم یعنی خیلی اعتقادی ندارم به اینکه اون ریویو داره فنی نوشته میشه داره واقعا از دید موزیک برسی میشه بنوشته میشه که اما این که خیلی جاها خودم دیگه مثلا اینجوری بودم که راجع به خودم ها ام. مثلا با بی خیالی داری دروغ می‌گی من مثلا اینقدر خوب نیست که تو داری میگیدی میفهمم خودم که چیکار کردم می‌دونی ولی این وایب وایبی که دارم می‌گیرم تو لحظه داره اتفاقی میفته من نشون چون اسم تیرو اووردی دارم راجع به اون پروژه صحبت میکنم خب اون پروژه خب کار من کانسپتی همیشه داره میاد جلو دیگه موزیک داره روی کانسپت ساخته میشه. مثلا همون اجرایی که تابستون داشتم خب بعدش که با آدم صحبت میکردم و میدم آره اون اتفاقی میخواستم دقیقا افتاد روشون میدونی اون وایبه برای من خیلی بیشتر ارزش داره که هم میفهمم که اتفاقی که میخواستم افتاده همینی که اون آدم ها اومدن نشستن اونجا درگیر هیچ چیز دیگه نبودن جسم و مغزشون که حالا یکی در نباید ولی هر جفتش رو به موزیک من واسه اون تایمی که من تصمیم گرفتم و واسه اون کاری که من تصمیم گرفتم انجام بدم. وای نظری که اون داره اون لحظه میده از همه چی مهم‌تره چون حداقل مثلا تو خونش نبوده نبوده مثلا یه چایش بریزه یا هر چیزی یه لحظه پرچه از موزیک من کاملا درگیر این موزیک بوده و به نظر اون قابل اطمینان‌تر لذت بخش هست